بسم الله الرحمن الرحيم رسيبين بدرس سنفومه ورقات ينفرق بين علم فقه ظن و شك درين درس اين استراهاتو توزمده والفقه اخص من العلم فقه خاصتر از علم هست علم عامتره منظور البتاز فقه ان فقه اللغوية فهمناه فقه شرعی بله فقه خاصتر از علمه چون هر, علم هر علم فقه نست. علم هست ولی هر علمی فقه نیست علم تفسیر داریم علم تاریخ داریم علوم دیگر داریم پس الفقه به این معنا اخص من العلمی خاصتر از علم هست والعلم علمو علمو میکنه معرفة المعلوم الماهوه به فی منظور از علم شناخت معلوم یعنی اون چیزی که دانسته بشه الماهوه به فی الواقع به شکلی که در واقع هست پس شناخت هر چیز به همون شکلی که در واقع هست بش میگن علم اگر شخصی هر چیزی رو بر اساس واقعیت شناخت این شه ال والجهل جهل که در مقابلش هست تصور شیء على خلاف ما هو بهی فی الواقع تصور کردن اونجا گفته بود در تعریف علم گفته بود معرفتو المالو در تعریف جهل میگه تصور شیء. شون امام الحرمین خود یکی از کلامیون بوده است در اصلاحات. تدقیق داشته تصور الشیع گرچه اللہ میگویند میگوین بعدن برگشت کاری بین مسائل فعلا نداریم، تصور الشیع علا خلاف ما هو بهی فی الواقع والجهلو جهل تصور کردن چیزی برخلاف خلاف آنچه که در واقعیت هست پس تصور کردن چیزی برخلاف آن آنچه که در واقعیت هست که همون جهل مرکب هست وگرنه اگر شخصی چیزی را نداند میگن جهل بسیط اما اگر برخلاف واقعیت بداند اون موقع میگن جهل مرکب و العلم الضروری حالا که علمو تعریف کرد میخواد بیاد بگه علم انواعی دارد و علم ضروری مالا یقع النظر و استدلال. علم ضروری اونی هست که حاصل نمیشه از نظر و از استدلال. خودش نظر و استدلالو رو توضیح میده. یعنی نیازی به بحث و بررسی نداره علم ضروری. کل علمی، کل علم واقعی با احتل مانند علمی که کس میشه با یکی از حواس پنجگانه و هیه عبارتند از سمع شنیدن و البسر دیدن و شم و بویایی و لمس, لمس کردن و ذوق و چشایی علمی که با یکی از این حواس پنجگانه به دست میاد میگه علم ضروری هست اینی که یخ سرد هست این با نظر و استدلال به دست نیومده یعنی که آتش گرم هست این با وسیله نظر و استدلال بده نیامده است. پس علم ضروری رو گفت و اما العلم المکتسب اما علم مکتسب یا همون نظری فهو ما یقو عن نظر و استدلال اون علمی است که با نظر و استدلال دست اومده است با نظر و استدلال یعنی که وضوع فرض هست یا نیست و اینی که زمین میچرخد یا یعنی نمیچرخد این نوع علوم حالا که گفت نظر و استدلال الان خود نظر و استدلال رو توضیح میده و نظر هو الفکر فی حال منظورفی نظر یعنی فکر کردن در حال منظوری در حال همونی که بررسیش میکنیم نظر درش داریم و الاستدلال طلب و دلیل استدلال چه هست که گفته بود با نظر و استدلال استدلالن طلب دليل والدليل هو الدليل جهس هو المرشد الى المطلوب دليل وان شيزي هاس كي راهنمایی میکند به مطلوب دليل بر وزن فاعل مثل كريم اسم فاعل هست بس علمي ضروري داشتيم و یا علم مقتصد فراموش کردیم جا... کلمه ای رو در مورد علم ضروری آورده بود اون علمی هست که به دست میاد به وسیله یکی از حواس خمسه او به تواتر یا به وسیله تواتر به دست بیاید یا علمی که به وسیله حالا تواتر چه تواتر یعنی یک جمع بزرگی خبری رو بدن که احتمال توافق کردن بر دروغ بسن روش نباش بسید یه جمعی به ما گفتن حالا قبل از این که تلوزون ها بیان چینی وجود داره یا آمریکایی وجود داره که امکان این که تمام اینها بیان با هم دیگه توافق کنند که ما رو دروغ ببندند که چینی وجود داره و همچنین امکانی وجود نداره پس لذا خبره رسیدن چین به ما یا خبر این که وجود داره برا ما یک خبر تواتر هست این هم از تواتر بود اما ذن و شکچ هست و ذنو تجویز و امرینی احدهما اظهرو من الاخر ذن تجویز و رواداشتن یکی از دو امر که یکی از آن دو از دیگری ظاهرتر باشه. این در این درس نسبت علوم و در در نسبت آگاهی ما در رابطه با علوم میگه که علم هر شخصی چندین حالت و چندین درجه داره اگر دانستان چیزی همانطور که واقعیتش هست باشه که بهش میگن علم اگر برخلافش باشه توضیح شو گفتیم زن یعنی دانستن و ندانستن هر دوتا وجود داره ولی دانستن ارجه هست از ندانستن یعنی ما نسبت به یه چیزی آگاهی داریم شخص شک هست که دو رکعت خونده است یا سه ولی غالب گمانش این هست که سه رکعت خونده است پس اینو میگند زن اینو میگن که زن خب پس در که جازم قبلا تعریفش رو خوندیم همون علم بود اما درک غیر جازم از یک چیز درک غیر جازم از یک چیز از دو حالت خارج نیست یا این که دو امر با هم مساوی باشند یعنی من شک دارم که آید دو, دو رکت خوندم یا سر رکت ولی به شکل مساوی هست این شک من این درک من به این میگن شک ولی اگر یکی از این دو طرف سنگین تر باشه گمان دیشتر باشه اون موقع میگن زن پس اگر یکی از دو عمر ارجح باشه بهش میگن زن اون سمت دیگه رو بهش میگن وهم بهش میگن وهم شخصی شک دارد که آیا دو رکت خانده یا سرکت سر سرکتش ارجحتر هست به این سرکت میگن ذن و درکش و به درکت میگن وهم ولی اگر این شک به شکل مساوی باشه یعنی بین این که آید درکت خونده یا سرکات شکش درکش کاملا مساوی باشه هیچ کدوم از این دو طرف غالب نباشه بر دیگری اون موقع بش میگند شک و الظن تجویز و امرینی احدهما اظهر من الاخر و الظن تجویز دو امر هست ولی یکی از دو امر ظاهرتر هست از دیگری غالبتر هست این تعلق درک و داره نسبت به ما توضیح میده که درک ما نسبت به اشیا به چه شکل هست اگر بگونه ای بود که یه چیزی رو میدونسیم ولی احتمال هم میدادیم که مسئله دیگه هم باشد یکی از این دوتا رو قوی تر بود در نظرمون بشمیشه ظن وشک و تجویز و امرین لا مزیت لی احدهما على و شک تجویز کردن دو امر روا داشتن دو امر هیچ کدومی که از اون دوتا بر دیگری مزیتی ندار شخصی نمیداند که آیا فلان کار رو انجام داده است یا نداده است میگه انجام دادم ولی به همون اندازه مساوی، شک دارد که انجامش نداده است بهش میگن شک شک که میگه شک دارم یعنی به شکل مصابی ولی اگر یکی از دو طرف غالب بود اون موقع بش میگن ون پس این اصطلاحات چهارگانه بودن علم جهل وشک وشك در زبان عربی این چارت تا اصطلاحو توضیح داد میاد میرسه به بحث بعدی و علم اصول فقه علم اصول على سبیل الاجمالی وكيفيه الاستدلال بها میگه طرق اصول فقه نگفته دلیل چون متکللین بین دلیل و امارت فرق قائل بودن امارتو ضعیفتر از دلیل دانستن لذا اصطلاحی رو به جای این به جای اینکه کلمه ادله رو بکار ببره، طرقو بکار برده و طرقوه علا سبیل الاجمال که ما بر اساس همون ادله که اصولیون حداقل اصولیون معاصر به کار بردن ادله معنی میکنیم. میگه ادله اصول فقه به شکل اجمال هستند ادله اجمالی هستند روی ادله جزئی بحث نمی ادله جزئی رو در کتب اصولی فقط به عنوان مثال میان. مثلا اتو زکاته کتب علیکم الصیام، این نوع ادله به عنوان مثال در کتب اصولیان وگرنه قواعد اصول فقه قواعد کلی هستند مانند اینکه امر وجوب را میرساند ناه تحریم را میرساند یا اینکه قیاس جز ادله هست یا نیست این نوع ادله اجمالی رو علم اصول فقه بحث میکند پس علم أسول فقه طرقه على سبيل الإجمال هذا ليش برسبيل الإجمال حسن وكيفية الاستدلال بها ودر مرده كيفية استدلال بوسيلي قواعد كلي بحث مكنات دلالة الفاس شروط استدلال و مسائل الدقيق مرتبط بأسوله فقه هستن تا اینجا اکتفا میکنیم و البته درس بعدی رو هم در همین درس بگیم چون درس بعدی ابوابی رو که در این کتاب مطرح میکنه آورده است میفرماید که ابواب و اصول فقه چه بابهایی دارد و ابواب و اصول فقهی ابواب و اصول فقه عبارت است یعنی این اصول فقهی که نویسندن وشته اس روی نو این ابواب کار کرده است. اقسام کلام روی اقسام کلام کار کرده. والامر والنه امر نه. والعام عام والخاص روی خاص. والمجمل مجمل والمبين مبين والظاهر والمؤول ظاهر مؤول. والافعال روی افعال والناسخ والمنسوخ روی ناسخ منسوخ والجمع والاخبار اجماع و اخبار اینا همیش دوزیشون میاد والقياس القیاس منظور از اخبار همون حدیث هاس قياس هاس و الحظر والاباحه حظر و اباحه هست و ترتیب الادله ترتیب ادله رو میبحث المفتي والمستفتي مفتي و مستفتی چه آداب و صفتی داشته وأحكام و احکام المجتهدين و احکام مجتهدين همین ابوابی به همین ترتیب اینجا استاد امام الحرمین رحمه الله آوردهند کتاب الاصول من علم الاصول شیخ اسمین دقیقا همینا رو با زبان ساده آورده است و با کمی توضیحات بیشتر اینشالله تا اینجا اکتفا هست بر اساس این ترتیبی که اینجا در قسمت ابواب اصول فقر گفتیم که میاد اقسام کلام الى آخر از درس, درس بعدی الله شروع خواهیم کرد موفق و پیروز باشید.